دوم برای خودتان هدف و مقاصد روشن ایجاد کنید. احتمالاً مهمترین کلمه برای موفقیتتون تا آخر عمر کلمه وضوحه. حداقل 80 درصد موفقیتتون از این ناشی میشه که براتون کاملا واضح باشه که دارید تلاش میکنید چه چیزی به دست بیارید. متاسفانه احتمالاً 80 درصد یا بیشتر شکست و ناکامی ها احتمالاً نصیب کسایی میشه که چیزی که میخوان و راه رسیدن به اون براشون گنگو و مبهمه. ایچ الهانت، میلیاردر بزرگ نفتی گفته که موفقیت در واقع فقط به دو چیز نیاز داره. اولین اینکه دقیقاً معلوم کنید که چی میخواید. اکثر افراد هیچ وقت این کار رو نمی کنن. دوم اینکه تعیین کنید به آوردنش چه بهایی داره و بعد تصمیم بگیرید که اون بها رو پرداخت کنید. اگه حاضر باشید بهاش رو بدید، هر چیزی رو که بخواید میتونید داشته باشید. طبیعت هم همینطوره که اگه چیزی از اون بخواید، همیشه بهای اون رو کامل و از پیش میخواد. یه فرمول هفت قدمی ساده است که میتونید در باقی زندگیتون برای تعیین و دستیابی به هدف از اون استفاده کنید. همه یه افراد موفق از این فرمول یا تعدیل شده اون برای رسیدن به موفقیت استفاده می کنند و در نتیجه بیشتر از یک فرد متوسط به نتیجه می رسند شما هم میتونید همین کار رو بکنید. یک در هر بخش از زندگیتون چیزی که می خواید رو دقیقا مشخص کنید جزئی بافه با منطق باشید تا یک سرگردان کلی باف مشخص کنید چقدر می خواهید درآمد داشته باشید؟ مشخص کنید میخواد وزنتون چقدر باشه؟ خانواده، روابط و سبک زندگیی که میخواید داشته باشید رو مشخص کنید همین کار به وضوح مشخص کردن احتمال رسیدن به اون رو به نحوه چشمگیری زیاد میکنه دو آن را به وضوح و با جزئیات بنویسید همیشه روی کاغذ فکر کنید هدفی که نوشته نشده باشه اصلا هدف نیست فقط یک آرزوس و پشتش انرژی وجود نداره اما وقتی هدفاتون رو از تخیلتون بیرون میارید و روی کاغذ به اون شکل میدید در واقع اون رو در ذهن نیمه هوشیارتون برنامه ریزی میکنید و در اونجا قدرت پیدا میکنه. 3. برای هدفتان مهلت تعیین کنید مهلت در ذهن نیمه هوشیارتون به عنوان یک سیستم وادار کننده عمل میکنه. مهلت شما رو بر میانگیزه که کارهای لازم رو برای عملی کردن هدفتون انجام بدید. اگه هدف اندازه اندازه کافی بزرگه، برای هر بخش از اون مهلت‌های فرعی تعیین کنید. اون رو به شانس نسبارید. چهار. تمام کارهایی را که به فکرتان میرسد که باید برای دستیابی به هدفتان انجام دهید، فهرست کنید. وقتی کارها یا فعالیتهای جدید به فکرتون رسید، اونا رو به فهرستتون اضافه کنید تا کامل بشه. پنج. فهرستتان را در قالب یک برنامه مرتب کنید. مشخص کنید اول چه کاری باید انجام بدید و بعد چه کاری باید بکنید. مشخص کنید چه چیزی مهمتره و چه چیزی کمتر اهمیت داره. بعد درست به همون ترتیب که نقشه ساخت خونه رویاییتون رو می کشید، برنامه تون رو روی کاغذ بنویسید. شش برای عملی کردن برنامه تون اقدامی بکنید. کاری انجام بدید هر کاری که باشه اما دست به کار بشید، راه بیفتید، درنگ نکنید. هفت. هفتمین و شاید مهمترین قدم در فرمول دستیابی به هدفها اینه که هر روز کاری بکنید که شما رو به سوی مهمترین هدفتون در اون زمان پیش ببره. در خودتون این انضباط رو ایجاد کنید که سالی 365 روز کاری بکنید که شما رو جلو ببره. اگه این فرمول رو هر روز در زندگیتون به کار ببندید، اونقدر نتیجه میگیرید که خودتون هم حیرت خواهید کرد. این هم یک تمرین برای شما که میتونه زندگیتون رو کنه. یه برگ کاغذ بردارید و ده هدفی رو که میخواید در دوازده ماه آینده به اونها برسید رو بنویسید. هر کدام از این هدفها رو به زبان حال بنویسید، انگار که یک سال گذشته و شما به هدفاتون رسیدید. هر کدام از این هدفها رو با کلمه من شروع کنید. مثلا میتونید هدفهایی مثل این رو بنویسید: من هر ساله فلان تومان درآمد دارم یا من X کیلو وزن دارم یا من فلان ماشین رو میرونم. ذهن نیمه هوشیارتون فقط فرمانهایی رو میگیره که به زمان حال و به دنبال کلمه من بیان بشه. وقتی فهرست ده هدفتون آماده شد، مهمترین هدف فهرست رو انتخاب کنید. از خودتون بپرسید کدام هدفه که اگه همین الان به اون برسم، بزرگترین تأثیر مثبت رو روی زندگیم داره. هر هدفی که هست دورش یک دایره بکشید. بعد اون رو بالای یک صفحه کاغذ دیگه بنویسید و براش مهلت تعیین کنید. فهرست بنویسید. فهرستتون رو در قالب یک برنامه مرتب کنید. برای عملی کردن برنامهتون اقدامی بکنید و هر روز کاری بکنید تا به هدفتون برسید. این تمرین احتمالاً بیشتر از هر تمرین دیگه‌ای افراد رو به موفقیت رسونده. از حالا به بعد تصمیم بگیرید که شدیداً نتیجه‌گرا باشید. همیشه درباره هدفتون فکر کنید و حرف بزنید. اونها رو بنویسید و دوباره بنویسید. یک سره به دنبال راه های بهتر برای رسیدن به اونها باشید این ترکیب فرمول هدفگذاری و تمرین هدفگذاری احتمالاً بیشتر از هر کار دیگهی که بتونید فکرش رو بکنید روی زندگیتون تأثیر مثبت داره امتحانش کنید